من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من قاتل سلخ خودش کنه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحم لله رب العالمين و صل الله عنه و الله و آل اطایرین اللهم و مغمومه ساخت به مناسبه که شدن که مغموم شیحایی سهباتیشون بروزرد چمتا زمان شیف و بعد بعد شیخ حصول جزو کتابی لراسی بود درسی بود لذا آرایشان ایشان بود در خوزه ها حالا دیگه زمان ما محصه میست اما بیریم مناطبت این نظر مبارکیشون رو در اینجا آورده. خلاصه نظرشی ایشان داشتن این بود که قبط تجرید وجود رو اعتبار فرموی میکنه و اون جهات واقعیه میتونی در قبط تاثیر تحص یعنی اگر انسان ارتکاب حرام رو کرد بعد منور شد مکروحه خب این یه درک هست به اصلاح خب که داره بعد منور شد مباهه یه درکی دیگه بعد منور شد مثلا اون حرامی روی که ارتکاب که جزه کبایر بوده بعد منور شد جزه سخایر تا من فهم میکنم بعد منور شد اصلا جزه امور بسیار مستثنی بوده که این کاره مثلا خیال کرده این کافر نکاشتش بعد منور شد که این پسر خب این بیشتر پسنه بیشتر این ریلان ایشان اون مطابقت و در مطابقت با واقعی رو جزو وجوه اعتبارات تجربی حساب کردند و در صورت اینکه مرکز مرسیت واقعی هم باشه تداخل اقابه این مسرح فرموزن و که من دقیقا نمیتونم چون نتونم روز مراجعه کنم که ببینم دقیقا مرادیشان از صداقه به اقابه این چیه؟ یعنی فقط اقاب محفیت به میشه یا هر دو اقاب تاثیر دارن هم خوبه فعیدی هم خوبه پای. من الان نسبت نیدم که انسر به قضایی و قبارد این است که بگه هر دو اقاب میشن یک اقاب شدید میشه مثلا یک شرب خم فرصومه با مثال یک درجه جهنم داره اگر صبح عنوان مخالفت اشارهی شرب خمر رو انجام بده اون یک درجه شدید میشه اون شدتش به خاطر اگر مثلا مرادیشان روش یا فرصوی مثلا شرب خمر یک درجه از عقوبت داره اون حالت که اسیام مثلا ای بر اون درجه ای که آتش داره ده تا شلاخ آتشندش میپنه به خاطر اون جهت اون په خالی. شاید نظر مبارکیش باشه که هر دعا با هم جمع میشه خب از این امثال مرحوم استاد ایشان اشاره کردن که این مسائل ایشان درست نیست من جون این تداخل عقاب این نقطه ای را که هر هر حساب خاصی دارن اگر انسان گناه را انجام داد و گناه بود این معجزه یه دو تا نداره چون. اگر گناه را انجام داد و نبود یک یه عقاب قهری داره پس تجری یک چیزه معنیت یک چیزه این تداخل عقاب این که درست نیست چما این که اینم که به وطوره اعتبارات فرمدن درست اصلا هم که اگر بخواهم یک محاکمه با قول قدم های بین این بزرگوار و مخالفین ایشان مثل مرمو استاد و دیگر هم قرار بزین اینطور ممکن است بخشی بشه خود دقیق بکنید اما مسئله تداخل اقابه انتقالی آنی مثلا این نیست حالا این من چون این صحبت شد از کردیم از احل سنت هم بهترین معتقل انده این داره احتمال باشه اینکه که آقایم گوستن لا و چلا از کردن اون روایت مسلمان به سیفه ما فرقاتل و المحصول نام و از نیا تمام فرما بالمحصول فقط اراده قتل صاحبه لنه هو اراده قتل صاحبه رضا ادوهشون تصیح دیرنم با اراده خط یک درجه از حقوق با وغور خط یک درجه دیگه مثلا دیمی که آهید کردن اگر ما باشیم و ظاهر اون رواید اینطوره و ظاهرش اینطوره اراد خطل صاحبه بعدا سراحتن فلنار یه از این واضحه اگر میشه کن قال علیه السلام ارقا سلال محتول یعنی اگر صاحب بسوط بگه از این دواست مبارای کرد بسه ارز کردن این روایت رو ما در مسادر خودمون نداریم در کتاب شر... شرایع آمده در کتاب تحزید که زیادی آمده اونم از طریق زیدیت خود یادش بوده اما اگر کسی تمام نهره رحمت الله اگر کسی این حدیث سو قبول می کرد هیچی همین قدرزم آیان استبعاد کردن که آخه این تداخل عقابه این چیز میشه دو تا ملاد نباید باشی یک ملاد که بیشتر نیست اونم ملاد مرسی و ظاهر این حدیث که اینه دیگه لحنه و اعراض خط به از اون منم و من یک تا المامونم و جزا رو جهنم و خالدن فی ها اونم که هر که پس مختزای جمع رقم آیه و روایت اینه دیگه اراده سلقت فی انا وقوع قطعم فی انا تا سلطه اینی که های فرکوی فهمدن ملاک تعدد وجود نداره این روی فوائل عقلی سیشون فهمدن اما علیه کسی فرسون این روات قبول کردن دید از عدسان قبول که تعدد داره یعنی اینطور گفتن اگر قتل ای اراده ای ای اراد قتل صاحبه و شرط سبر قتل دوتا اراده یکی خود قمی اراد قتل ولی شرط یکی در نه قتل ما باشیم مزاره هست یه ن خوب میگییم چه این کار کرد جمع بین حدیث و سای مبارک همینطوره این جا کوی فرنا خیلی عجیبه ملاک تگ می شد نه اوللا ظاهدهطور بهوارد یک ع قبول تون روبرصبح و چون از کل می باید اراه قتل رو بخورارید دوبار هم خورده در سعه بخوریم چون هدفشون نفس جی به لایوزش علی در می چالهعطور به این تتصا و نه ح تا تلشونطرح تلح محصول شد تو جنگ جمعن باید بگن تره هم که اون وقت هم مر... به اصطلاح مروان تره رو تیر زد اون که تیر زد با این که در هم بودن با هم در لشکر آیشه بودن مروان از خوشت تیر زد که به پای تلتو خورد تصادقا تیرم هم کشنده نبود این بیچاری وضعه خوبصور دوزنیم خونتش رد ارچه هم داد میزد تره رو با حتی اقلاد ارتشش با و که ا اینقدر دادو ناله کرد تا اینقدر از پاشن که اون خودش کشنده رو نبود. این گفت بله تا نمی کشه سردین نمی پا شده و دوهای ناله میکرد می می و میگو موازم کسی اصلا میگفت هیچ شده اون نگاه نمیکرد خیلی عجیب وقت ارتشو خودشو کار این رو هر حال اینم جدا و نرابه بحله که سو بله یه قدم از دارد دارد عشق مباشران که از عشق مباشران الان که ماکان به این وضع از خود ن نعصده که در اون اواخر گفت ما رئیس و دن شیخ مبارشی او یعنیدنی ها که از زلگان از شرکتات به این صورت خونه از دین بله حدر بشت خب راستن میگه این توضیحات رو معکد به نیاز به تکرار نداره ظاهر حدیث اینه جمع علی باو مبارکیه پس این इशاری که استاد فرمودن و شاید صاف اصول عقیدش این باشه من مسافت رو میدم صافاً یک دلیل به نظر نمیاد شاید نظر صاف این باشه که اراده معرفت هم یک عقوبتی داره خود حقوق معرفت هم یک عقوبه که در حدیث ما میاد شاید هم مشکل ندونی قرضه چیزی این بسیار بدیهو بدیهی و مطلانه مثلا بعد درود مثلا احل سنت، قبول. از ورود نفس مثلا اهل سنت فی نفس قبلا این از سنت مناقشه کردن، از کردن. حتی گفتن این ابو ابوبکر بود ما قبول نداریم این مطلب رو این نفهمیده. بعد ما که و این نفهمیدت معناش ازه. بناشی به کمال اصلا تصریح کردن که حرب و بود در صفین حرب و به این مسئله. اما به هر حال آمده بعضی‌ها به خاطر خیلی مناقشه تو خیلی مناقشه برانگیزه اون رو باید خیلی حرف عجیب اینی صاحب و سو خیلی حرف اجوره لیده اما اون مسئله وجود اعتبار ظاهره بشه این مسالحهی ای که کرد بین سرس این به این ترتیب ظاهره و اون اینکه این قبح فاعلی مال چه جهتیه من احتمال میدم صاحب و سو. نظرش احتمال میدم من اون صاحب و سو قبح فائلی بانوان اتیام و لحر میدید ما یه عنوان اتیان و حرام داریم یه عنوان تمرد بر نظام داریم دوتا عنوان ایده میگم من مخاب شراب بخورم اتیان و حرام یه رفتان میگن اصلا مخالفت با نظام بکنن یا مولایون ظلم بر مولا بکنم. حد حرمت مولا یعنی مولا برای شلشن شده که این عبد در مقام اسیان و تمرد بر نظام به هر چی شده بر اون تمرد بکنن ببینید این دوتا رو بیاین با هم فرق بگذاریم من احتمال میدم نظر صاحب حصول اون قبه فاعلی رو به ایتیانال حرام زده آیا میگه قبه فائلی رو به تمرد علن نظام زدن وخی این طور بگیم ایتیانال حرام از قبیل کذب، بوده محتضی قبه. اما تمرد علن نظام از قبیل علت علد تامه برای قبه اگر عباراتشون هم دقیق بشه آقای خویی که هسته این اون ظلمون مولا پس و, و اینجور تفسیر بکنیم چون تمروز علم نظام مازام این عنوان تمروز علم نظام باشه قبیه اما اکیانال حرام دائما قبیه نیست داشته انسان استراب داره انسان مفرق داره اکیانال حرام یه چیزه تمروز علم نظام چیز دیگریه خوب دقت کردیم من احتمال میدم نظر مبارک صحاب رسول این باشه گفتی ایشان اتیان رو حرام کرده خب اتیان حرام به وجود اعتبارات هم موسی کس کس مختصی قب هست اما اینسانیست که همیشه قدیه خوشه اتیان حرام مختصی قب شما اما دیگه اتیان رو حرام راست میگه اگه این صاحب رسول اتیان رو حرام فهمیده همه با ایشان مختصی قبه مثل کسی چرا؟ شما اثر مگر اعتراف به چنین کاری جهرفه چنین اشیای حرام قبیح نیست دیگه اکراه به ذا این حدیث رو گفتن پس اعتیان حرام درست قبیحه نمیخوام بگم نه اما اینطور نیست که از قبیل ظلم باشه دائما این عنوان صدق بکنه قبیح باشه نه ممکنه عنوان اِشآن حرام صدق بکنه اما قبیح نباشه مثل که در بعضی از و میخواد قبیح نیست. اما نظر آقایی مثل همه آید محقق اصفانی این نظرشون ظلمه در مولا حالا من بشه ای ظلمه در مولا برداشت تمرد علم نظام <تصفيق> نظر اینها عنوان تمرد علم نظامه بکرد <تصفيق> بکنم عنوان تمرد علم نظام امساقا از قبیل ظلمه یعنی ما موردی نداریم که صدق بکنه تمرد علم نظام و قبیل نباشه بکرد خیلی زرافت دارم ممکنه صدقه بکنه اتیان حرام و قبیه نباشه اما نمیشه تمرو در نظام باشه و قبیه نباشه مثل ظلمه مادام صدقه ظلمی میکنه قبیه مثل کهز نیست، ممکن است صدقه کهز بکنه کهز گفته بشه اما قبیه نباشه پس بیهن به این بزرگوارات مصالحهی ای بکنی صاحب توسون دارن ظاهرا و حرام رو گرفت و انصافا اگه هم اگر اینطور باشه حق بایشون رو به نظر به دو اعتبار میکنه انصافا اگر مرادیشان اتیان رو به باشه راست حق بایشون رو مثل کسی اما اگر مراد هم مثلا آقای خویی زلمون اگر مثلا اگر عنوان رابیشون ظلم المولا هست به جای ظلم المولا رو برداشتی چون نظام عدید و موالی بود به جایی رو عنوان تمرد علن نظام تمرد علن نظام این تمرو در نظام خودش خبیهه گمهز بایری داره دقیق میکنه، نمیشه دیگه انقلاب نمیشه جایی تمروز بر نظام باشه و خبیه نباشه با سرق اموان با حفظ اموان استرار باشه تمروز نیست بر نظام اتیانال حرام هست تمروز نیست و لذا ما از پرین حدیث رات هم این شور منا کردیم در این موارد سته اتیان الحرام هست اما تمرد علم نظام نیست. و اونی که موضوع احکام جزائی تمرد علم نظام هست. اون موضوع احکام جزا. درسته ایشان فرصی این... نظر میخوام. ایشان بازور یک با دور یک افرادی از چرا فرمز بسیده فرصیم با مسا حرام رو با کار خلاف قانون رو انجام بده، اما تمرد علم نظام نکره چون پس افرادی بسیده شده از چرا فرمز بی... بسیده پس شاید من احتمال می میدم تازه چنین نسبت نمیدم من خیلی معجمم چون از بحث از ماهوی نسبت نه بعد در کتاب شیکور نه وزر بر ماشرس میکنه اگر ما این جور توکیج بکنیم که صاحب خصوص نگو اراده قتل صاحب رو ببینید اراده قتل صاحب این اراده قتل صاحب این با احتمال حرام میکنه اراده قتل ممکنه است انسان اراده قتل بکنه اما بله میشه این عمل محبوب و بوده این هست یعنی این دقت میکنید یا مثلا اصلا محبوب مولانا مولان نبوده پس اگر ما باشیم و ظاهر و عنوان افتیان و لحرام این ممکنه اولد باشی در مقام حسن فایل و قبل فایل افتیان و لحرام باشه قبیل نباشی راست در حقا باسات باشیم مثل کسی اما عنوان تمرو در نظام من هرکس تقوّل نکردن جای تمرد علی نظام صرف بکنه و نباشه در موارد اعتراض در موارد 3ا تمرد علی نظام نیست اصلا عنوان تمرد در نظام چه دور می شه؟ مثلا وقتی این که اصلاح خوی اعتراض و شبه قهر تجریر وجوه اعتبار نیست ظلمو چون ایشون تجریر رو مطرح کردن به عنوان از تمرد علی نظام پس از اگر مراده ایشان این باشه حقا باییشان هست که بلازه فایلی همی شده. اما ساک و احتمالا محتفیت با امان اتیان و حرام. آب و کرده، مایه آب کرده شراب. اتیان و حرام. اگر این طور باشه که ساک و سول آن پرسن مرادش این باشه. که در بابد حسیبی ایشون قصد اتیان حرام داره. نه تمرد و نظام، قصد اتیان و حرام داره. بلا تمروزن نباشه انصاف به قضیه اون به وجوه اعتبارات سر میکنه خود خود این هم متباقی دستد بعضی اعتیان حرامیز تمروز هست خب بله اینه اعتیان بله هر جوانان تمروز بود قبیه قبیه این خلاف های مثلت توجیه کلام صاحب و صور با این توجیه مقضی مخاطب دقت محل بحث هم روشندتر بشه هجری ازا نمیتونه تمروزن نباشه خب خب اونو انجام خب میتونه ممکنه بگه من حالا میخوام حرام رو انجام بدم همینجوری میخوام با شاره مخالفت میدونم حرام در مقام مخالفت نیستم مثل مثلا من برم میخوام اینکه یکم مثلا نشاط برانجام بدم من در نیست من درک که مخالفته با شارع نیست دارم میخوام نشاط خب همان می حرام میگه فطر میگه بله ایشان یعنی ایشان مگر اینکه آیه رو بیان تفسیر نمیشه کرد هر جای ایشان حرام بود تنارب به نگاه تفسیر مگر اشکالیش ایشان مراد شما از ایشان اینه شما بخاطر این حرف گفتید خلاصه حالا برگردیم بعد از بحث این مدایش خلاص که با صاحبش بود بحث در حد تجری رو ما متعرض شدیم یه وسط چلن میونه آخر بحث ان شاء ما در اینجا را اقوال 6 رو از مرحوم محوم محقق اراغی نور کردیم شیش در تجری و رمشی رو که ما اصولا در بحث به نظر علمی تر میاد به جای که به دنبال اقوال داریم مثلا قال بلان و دلیل او پلان قاله بلان به نظر ما بهتر نست که خود مسئله رو فیزاته فیزاته ها بررسی بکنیم و اون زبایی رو که ممکن است در منبال پیش میاد خود اونها رو در نظر بگیرید خب طبیعتا میگیم مثلا کسی که از این زاویه باعث شده این نتیجه رو و فلان آقا از این زاویه شده یعنی به جای اینکه بحث در اقوال رو بیشتر مسلط بکنیم خود ما در بحث علمی که بیشتر خود مسئله ها مورد بررسی. اون چذوره مسئله و ریشه های مسئله و اصول مسئله و اونهایی که زیربنای مسئله هستند اجزاء مختلف اونها باید مورد بررسی قرار بگیرن وبنابراین چندین چیز از این زاویه نگاه کرده به نتیجه مسئله یکی از این زاویه نگاه کرده بینه این کاری بکنیم که به اصطلاح جایی که به قول قدیمی‌ها معلولی فکر بکنیم عللی فکر بکنیم یعنی به جای اینکه همین بگیم این, این عبارت مثلا فلانی این طور گفت ما بگیم خود مسئله ذات مسئله واقع مسئله اینه این خودش یک بحث علمی ذات مسئله این حقیقت مسئله اینه اون که ممکن از زیر بنا و اصول و میشه های قرار بگیره این اضویان بحث اینه و اون چ چیزی در بحث تأثیر بذاره این جاده و نتیجه هم این جهات مثلا بر مطلب باز میشه. به نظر ما این راه علمی تر و دقیق تر به نظر میرسه تا مجدده که قال گلان داره راه عل خود مطلب رو فییناس تصور بکنیم گفت که رففل حد صعرف اهل خود حداات بشناسی اهل هر راه می دیدی میخواد تخلف به دلیل شو فلان چی رو راستو خود مطلب بره و شاول شد اون جوازه شو شد در مساله تجربی بلکه معصیت اصولا در این طی 1400 ساله تاریخ اسلامی ما شهر ما کار به دنیای غیر شادلیم مجموعه مصادیقی که مطرح شده اولا ابتداا تحصیل میشه به دو زاویه مهم یکی زاویه عقل گرایی و یکی زاویه نقلی که آثار صروفنای اصلی بحث اشاره هستند که اصلا در این مسئله از واقع عقلی وارد نشدن کلی. حسن و قبح عقلی هم قائل نیستند چه به واز فیلی شو لازم فاعلی اصلا قائل به حسن و قبح و مویثه و لون و طبایعتن تمام بحثی که ما کردیم با مثل اشاره بی‌محل جای محلی نداره برای اشاعره نه حسن و قبح فیزی نگاه میکنند که شور به ما مثلا مصلحت نداره مصلحت یعنی به اصطلاح داره شور به خم مقصده داره نه این جهات رو حساب کردن نه اون قبل فاعلی رو حساب کردن اینا دنبال تناوین نصوص و روایات هستن ادله شرعیه تمیه مثلا کاری برده عقلی نداره خب طبعاً کسی که دیگه دنبال این خط نتایجش خیلی نهای واضح دیگه مثلا من یک المؤمن متعمدا فجزا او جهنم خالدن فيها ظاهره این نتی این است که آتش جهنم برای کسی که قفل مومن متحمدن باشه. اون روایه هم من و اراد قفل صاحبه ظاهره بشینه که اراده قفل مصحفه ناهه القاسر و المحتول فه ناه. اونا بشه این بحثه که مطارعجان دادی قبر فیلی فائلی و فلا اونا دنبال نسن ای اراده بست اصلا دیمون خود گله قسمو که ما اصلا تو اینجور مسائل به دنبال نصوص هستیم و کاری به عقل و قبه فعلی و قبه فاعلی و مواهد عقل نظری و عملی و چیه هست حقیقت اصلا کاری به اون کارا ما نداریم خب اگر ما باشیم اون سفر قائده من یخط المؤمنم حالا با امان یک مؤمن زدیشی سریزد بعد نارجیم کافر خب صدر نمی کنم من یخط المؤمنم آتش نداره که این بحث نداره که اما اگر یک کسی رو زد با عنوان اینی را کشته نشد عراض قطر صاحب رو ولو قطر صاحب انجام نشد یک تیری هم زد با عنوان اینکه این برادر موامون شد باید هم مثلا یک اوزفنگ دویسته بودی این اشتباه شوی بردار عراض قطر صاحب رو سرگ رو رو چون روشن شد روی این مبنی ها رو عدم نگی سمیه هستن. هر جا سرگ حالا کافر در آمد خب دارست که قالی قتل مومنه مترمده در جایی عراض قتل ساهش این در نه آمد کافر در آمد بحث صفحه میکنه عراض قتل ساهش اونم ورده ناهده روشن شد مثلا پس یه راه بس به جایی این بحثایی که الان کردی یه راهی شدید که موظم عهد سنت که اشایرم پیش رفتن اصلا کایبین از عقلی که با حسن و خبه و حقیقت این حسن و خبه و و فائلی و سرایت بکنه و نکنه و این بحث هم کلن دیگه منطبیه اونا دنبال عدله سمعیه هستن. در عدله سمعیه هم تو عنوان داریم من یک نومنم متحمدن من عراض خفلت داریم ما درباق خمر هم اونا هم دارم لعن الله فرخم خالص ها اونا در ورنر رهستن به قیاس گفتن هر کسی که قصد ما آسیدی هم بکنه هم در خصوص خن کنه وارد شده مثلا کسی بلند شود در جایی باشه که این دکانی که اصابی که فقط گوشت میته توش میفروشد راه گوشت میته بخره و خورد و بعده معنی چیزی میتره نبود فشرده این باری گوشت <تصفح> سلام سلام سلام میگن چون تهران برتر میدن احتمام به خند به خوردن حرامه اهتمام به اكل میته هم حرام یعنی اونا استدلالشون راه برود، راه ورود و راه خروج در بحثشون کاملا بازه حالا اون حدیث قبول نکنن اونم کاملا بازه یعنی این روش بحث رفت و ادله تمییه اصل کاری این بحثی که حالا ما انجام دادی نه نه پس یه کار که ما به دنبال ادله تمییه باشیم در واقع اینا بیشتر مشه مقامه اطاعت و عصيان از راه گفتن عقل درستش بکنیم اونها اطاعت و عصيان و مسیان و ملاکازو تازه می‌ذارن به سر اصل مقامات رو به سر برمیگردونه میگن ما وقتی معادله سمیوم که شارع فرموده اون چی شارع فرموده انجام بده در یه یه کار نداره که حالا این قوه فعلی داره واقعی داره چیز داره تبدیل هوس میشه حتی در مسائل خیلی مهمتر چون در روایت داره که ابوبکر گفته یقینا بنده جهنم خیلی آرزو خداوند قدمش در آرزوش نیست بحث قدم معروفه خیلی از اهل سنت فرمودن که این معنا معقول نیست خدا قدم جوی لكن روایت وارد شده تعبد شده قبول میکنی تحویل هم نمی کنی معبول هم نیست نمی کنی قبول میکنی <تصفيق> دو خلاصه نه داعیه به تعویل داری او دقیق بکنی نه به رد داری فی نفسر خدا متعال قدم نداره اونم معبول نیستی خدا قدم داشته باشه اما در مرس آمده اونم قبول میکنی معناش شم نمی فهمی ولی معنا خیلو معقول. اما نه وارد شده ولو غیر معبوله این دارن انطره شد نه تو این مسائل مشابهدار قدم تعجب نکنید نه, نه خیلی تصریح میکنن خیلی راحت چون نقد بالا چ دا این رو ت بکنیم با ها نه, نه تعویر بکنید نه, بکنی. نه, بکنی. نه, بکنی. نه رد بکنید نه بیا این خدا قدم داره. نتیجه، تیشه این در روات همشه خدا قدم داره معنا نداره معبول هم نیست؟ نطال جلساتی در صحیحه بخاری قبولش دارن یک کلمه میسن نه یک کاری چلو میکنن نه من چه دایی ببین تحلیل لازمه پس یک راه بحثینه از اول بحث رو تکرار بکنن یک راه بحث همو دارید که معتزله و امامیه بیشتر داشتن و اون اصول عقلییی در اینجا هست. لكن در اینجا قبل از اینکه وارد عقوال بشیم این نکته رو در نظر بگیرید اون چیزی من منشأ این بحث در اینجا شده الان در کلمات علاوه ما چند جهتی که به نظر ما یک مقداری با هم دیگه خلق شده یک جهت دست کلامی و فلسفی معروف در عقل نظری امالی است که آیا ما قبول بکنیم حسن قبضاتی رو یا نه که این متاسفانه چون این مسئله تأثیر بودشه این یک مسئله مسئله دو بنابرای ایت حسن قبضاتی رو بکنیم در کتاب فلسفی و کلامی به این عنوان مفرخ شده که مراد از حسن قلقه ذاتی مایسته قلومه و زم و مده خب این آمده خایی نخواهی توی فر همین مایسته قلومه و مده آمله تو فر و اصول چی شده؟ مایسته قلقه اقوبه ممکنه از شما اینجا رو قائل بشین که با هم تفریح قائل بشین یسته قلومه و مده یه لومه چیزه یسته قلقه و ولی مسئوله چیز دیگریه اما این رو مسئولان انگرسن که اگر یاسته قبل لوم یاسته قبل قبول یاسته قبل این نکته دومی که در اینجا هست در اینجا توضیحی مثل مذهب آیوکویی یا مذهب آشن سن ندارد ما به اثرات خودمون یک توضیح نکات و ازش یک نکتهی که ما اضافه کردیم در اینجا این بود که این در یعنی از تو این توضیح در اینجا گفته نشد اما از حرفهای صابقه ما در مران من اینجا توضیحش شده ما از کردید این تلازون ما بین این دوتا یعنی این رو به قانون این منشه این بود که قانون رو بر اساس روابط عبدالمولا تفسیر کرده بودن چرا؟ بر اس... چون گفتن که اگر عبد مخالفت بکنه علی علمولا ببیرین و ظلمم که قبیه هست داتن به بحنا اگر مولا عقوبتش کن مشکل نداره مثلا اگر مولا بشت گفت که برو نان بخر نان نخرید کتا میزنه بشت گفت برو نان بخر اصیان کرد تمرد کرد یه تو خونه خوابید نرد بعدم منوزید دکان نانوایی نانبایی بخصه دقیقه از بکنم اینه بخواستن این رو بگن. در این صورت هم مولا میتونه مثلا دستا توشی بشیدنه چهارتا تیوی بشیدنه تو در مقام خصه تمرض بودی ولو اسیان رخ نداد خوب دقت بکنیم ولو اسیان رخ نداد اینا تفسیری که کردن در اساس ظلمان حلل مولا تفسیر کردن چون ظلم بر مولا شد؟ ظلم بر مولا هم که خبیه هست پس استحقاق و مقوبت داره حالا ظلم بر مولاش به نخریدن باشه اونم ظلمان المولا به خوابیدن تو خونه باشه که اظهار بازن من دارم مخالفت مولا می برای در واقع مخالفت نبود اظهار همم به همین اظهارت همم ظلمان المولا اون نقطه تنمی که ما در اونجا عرض کردی این بود این که شما می گین المولا و استحقه العقوبه یک مقدمه این داره اون منشأ شده که شما این نتیجه رو بگید. اون مقدمه این یا به قول علم ارتکازی به قول قدما یا علم اجمالی یا به اصطلاح امروزیا روزی ها زمیر ناآگاه شعور باطنی یک نقطه ناآگاه داره توجه به اون نقطه ناآگاه نجده اون نقطه ناآگاه در نظام عبدالمولا ملکیت ازبر مولاست در نظام قانونی ملکیت نید دفت بکنیم این خلاصه بحثه بود شما چند رو شما مرتفی همید این نقطه ناظار این زمیر ناظار یا این علم ارتکازی به قلعه علم اجمالی این یه نقطه اجتماعی بود چون ملک مولا دفت بکنیم مولا می توان در باره تصمیم بگیره در چه داره ای در داره ای که خود مولا مهره اون در دایه مولا باید حرکت بکن میگه تو نون نفریدی دو چطور بوشیدی دارید تو در مقام این بودی که با من مخالفت در بازی بکنی و تمرد بکنی دو چطور سو... ولو عملاً نشد تمرد سر اینجاست که در نظام قانونی هم همینطور این نقطه روشن شد این زیربنه ها رو برمه اعرض میکنم بگیم در نظام قانونی ما برتر بگیم که این مثلا تمرده بر قانون دقت بکنیم تمرده بر قانون ظلمت به جامعه نه به مولا دیگه مولا برگشته بشه ظلمت به خود انسان و ما بلامون ها بلا که این کانون هم اما این ظلمه بر انسان در جایی که قانون بیاد عقوبت ما ایم بکنه چون نظام نظام قانونیه ملامت هست اما این ملامت در نظام قانونی ملازم با عقوبت نیست یه کلمه این که آخوندین فرمای زلمون علل مولا به لذایع تعقل آخر بعد شد. این دارن زیر بناهاش رو ارج میکنن بگیم درست زورمان علل قانون زلمون علل مجتمع ظلمون به نفسه الا نفسه اینا همه درست اگر قانون با بد مالیاتی و بدی زلمون علل مجتمع لیکن اگر در جایی اراده لی این کار داشت و انجام ندار حتی اگر ظلم بر جامعه یا ظلم بر خودش باشه استحقاق و عقوبت و کیفر ثابت نیست این بحث دو گمه چرا؟ چون ما در نظام قانونی تا اون جایی که قانون کیفر رو ثابت میکنه قائل میشیم اون نقطه که ملکیت باشه دیگه اینجا مفرح نیست <تصفيق> اگر قانون آمد گفت کسی که همدن در مقام مخالبته قانوم و دین نه استحقام یک ماه زندان داره بازه. شبیه این عبارت رو در به اصطلاح در عبارت فیض مثلا از ابو هنیفه دیگران به ان دیات به اصطلاح, اصطلاح تعدیر خاصی داره مقدر از یکی دیگه هم دارد دیگه منصوص هست مقدس یعنی در باب اون عقوبت و کیفر خصلت اساسی کیفر اینه که باید قانون رو محدود بکنه خوب دقیق هر چه مرموع های اصحاب رسولیون بود که نه این مولا لذا ممکنه مولا یکه عبدور که احساس بکنه در مخاب مخالفت بزنید حساب میکنه توی یک مقام دو تو گوشی بشنیدن توی یک مقام چار تو توی یک مقام پنید آقایی بود آقایی فیالا نه همیشه ظلمه اگر ظلم شد عقوبت داره ظلم عمل مولاست میتونه مولا اون رو مثلا تنبیل بکنه تو در مقام مخالفت ولو مخالفت نشد ولو تمرد عمل انجام نشد ما بحثمون این بود صحبت دیگه تعالی کردیم اینا این زاویه بحث رو وارد نشدن اینا اون مسئله عقلی رو استحقاق مد رو اووردن از استحقاق مد و زن استحقاق عقوبت رو در آوردن. این یک زیربنا که در مطلب هست زیربنای دیگه, دیگه دیگه در مطلب هست اون رابطه بین خیل و قائله و تأثیری که قوه قائلی اگر قائل شدیم با قوه قیل انجام بده ایچ چهار تا مطلب اصلی و اساسی در مطلب هست. اوجان یه, یه قانون نداری که قدش... اگر داشتیم قانونیه داستیم. قانونی. داستیم. نه عقل فقط مز... میگه عقل فقط ذم و رو میگه این قانونه که باید کیفر معین بکنه ده تا ثبت کیفر نمیاد ذم و میاد اما کیفر رو قانون معین میکنه قانون ما که جوی بحثه، به قانونی بحث قانون داره. این راجبی بحث. از اینجا که حالا ما مسئله در نظر گرفتیم، دقت بکنید. ما اگر روی تفکرات گرایی آمدیم. اون تفکرات نقلی و اول گفتیم حالا تفکرات عملی. این مسئله رو زیر بحث اون اشاره کردیم برگردیم به گیری هایی که میخواد بشید. در این به نتیجه‌گیری‌ای که می‌خواست باشیم. در این جاها چون یک مسئله فاعل، مطرحه، یک مسئله فعل مطرحه. مثلا فیل شربه فاعل به عنوان خمر خورده خواهی نخواهی یک چون حالا ما اصل اغریر قبول کردیم یه مسئله مسئله ملاکات در مقام ملاکات تقریبا آقایان قائل نشدن که اینجا تقریب خب ملاک شربما یک حساب به ملاک شربه خمر حساب مصالح و مفاسد این دوتا با هم فرض میکنه قفه این دوتا با هم فرق میکنه یکی خب داره نداره پس یک مسئله فعل مسئله دو مسئله فائل اون مسئله فعل که در اینجا مطرح شده از دو زاویه مطرح شده یکی یک زاویه که فعل فی نفسه نگاه بکنیم اگر فی نفسه باشه عنوان شربه آب داره فی نفسه اینطور یک زاویه یک زاویه که نه ما فعل و فی نفسه نگاه نکنیم فعل و به فعلی که حسل بیه از تمر رو داره المولا به این عنوان حسل از تمر رو المولا اینجا این بحث پیش میاد یک فعلی که حسل بیه تمر رو داره المولا املا دو اضافه بر اینکه که قبیه هست یفتهه قلقه هون بس املا به فعلا در میان اقوال و علماء ما همینطوره. من هم من قال که این فعل قبیحون عقلن لیکن با بحث عنوان یعنی فعل مباه که حصل دیگه از تمرد و داره مباه ازده گفتن اضافه بر این که قبیح عقوبت هم دادیم من شعر اقوال دارم بحثون این عنوان که آمد عنوان حسل به تمرد هم قویه هم استخواق و حقوقت داری این راجیب فکر یه راجیب باید یک آیا اصلا عنوان تمروزه بر مولا اصلا اون بحث حسن قوح عقلی که مطرح شده در صفات نفسانی هم مخرجه؟ یا تو اون بحث منو حسن قوح عقلی و ذاتیوی مولا مال افعال انسان. مثل نشستن، برخواستن، آب خوردن پر آب خوردن، شب آب از شب کارهای خوردن اصلا جور اما صفات نفسی انسان مثل جود و صحاق و ترس و شجاعت و بخل و جبن و اینجور صفات نفسانی. یکیشم رویه کمرد بر مولا یا رویه انقیاد مولا. یک، آیا خود اینا قبیه هستن یا نه؟ یک بحث. دو، اضافه برقوب خود اینها استحقاق و عقوبت دارن یا نه؟ در بحث اول که قبیه باشن، خودشون به نحو علت تامه مثل ظلم یا به نحو مقتضی مثل کثره. روشن شد؟ بحث دیگیری که در اینجا باز مطرح شده، اون میاره اساسی در به اصطلاح عقوبت رو و در کیفر رو ببینید پس بنابراین یک فعل رو در نظر گرفتیم چون فعل یک واقعی داره، یک ظاهر داره، عنوان داره. این منشأ تفشید در بین علما، مثلا عده‌ای گفتن این فعل به عنوان نفسه به فی نفسه حلاله، مثلا به عنوان تمرض قبیحه. در مقابل عده‌ای اونها گفتن نه، نه بهش نفسه حلاله نه به عنوان تمرض، تمرض قبح بر فعل نمیاره. جزء عنابی نیست که ما سبب قبح فعل بشه. تمرض فعل رو قبیح نمی‌کنه. ما در مقابل با در... که قائل به قبح شدن بذیشون قائل شدن که عقوبت میاره بذیشون قائل شدن که عقوبت نمیاره ای طور شیبی ما رفت راجیه به مقام, مقام قبه فاعلی در مقام قبه فاعلی بذیشو اصلا قائل به قبه فاعلی نشدند اصلا قبه فاعلی ندارن ما قبه فاعلی نداریم نداری یعنی چه؟ یعنی قبه فاعلی دائما تابع قبه فعله خیر قبی باشه که قبی نه باشه هیچ اصلا قبه قائل مستقل نداریم شما میگید فرق در اینجا شرب آب بوده این که فرق قبیل نیست فعال جام نیست، نیست فهمه میکنه پس ما اصلا قبه فائلی نداریم این یک دو فرض هم که فرقی مثلا اراده کرده اون بحث حسن و قبح ذاتی راجع به فائلی نمیاد این یک بحث یه بحث دیگه اینکه میاد. نمیاد حالا که میاد آیا به نهره علت است یا به نهره مختصیه این زهایی های شده. هر کدوم از آقای نزید زابیه قبول کرده اگر برفردان قبول کنیم علت تامه یا مختصی آیا قبوبت مستلزم این هست؟ یعنی این قبع مستلزم اقوبت هست اقوبت هم به, به دنبالش میاد یا نه فقط قبع فایلی صرفه مثلا محبون شیخ انصاری که قبع فایلی صرفه اقوبت نداره آقای خوبی میان قبع فایلی داره اقوبت هم به این سر و به مثلا شیخ انساری با مرحوم آقای خویی در این جرد متحدند که این فعل شرب آبه این فعل قبیل نیست نه فی نفسه نه با اونوان تمرد مثلا قبیل نیست سرایت نمی کنه قبح فائلی به فعل ولی ازا خود فعلی هم در قبح فائلی هم هر دو شدید کرد آقای خویی با مرحوم شیخ اینده این که استاد میگه این قبح فائلی چون ظلمه مستحد به عقوبته شیخ خانسان که در مستحق لغمومت اغلاعیه عقلیه استحقاق عقوبت توی نداره مستحق مزمت به قسم سنیه اقوال درست شد پس اینها زبای یک زاویه بحثم حالا این چند زاویه یک زاویه در بحثم این که اصلا موضوع عقوبت و مصوبت کلند به قبل بر نمیگرده شما دنبال قبل فری کلن بر می‌گه دارمدار عمان از تمرد علی المولا اینم یک زاویه بند این زاویه رو بسه ما واقفای متفاوله خب آیا اون چون امامان گفتن نه ما دنبال تمرد علی نیستیم ما خوبه بدی نداریم نمی‌شه تمرد علی المولا پس برا برابر این زوایای بند که انشاء روشن شد این زوایایی است که برمی‌گره در این مسئله و های این مسئله که حسنه که از کلم اصل مسئله عقلیگرائی و نقلیگرائیه یکی ملازمه بین ملامت و عقوبت یکی مسئله سرایان قوه از فائل به فعله یکی در مسئله مهیار استحاق و عقوبت و مسئولت چیه این مجموعه ای امور رو که با هم بررسی بکنید او نتیجگیری خیلی راحت میشه اون که ما بهش اعتقاد داریم یک قبه فعیلی فیزاته نداره عنوان تمرد هم عنوانی نیست که بتونه اون عمل با قبیل بکنه چه برسته به عقوبه عنوان قبه فاعلی هم داره شون خود تمرد علی نظام کار نداریم به ظلم علال مولا ظلم علال مولا یک عنوان تمرد علی نظام عنوان دیگریه خود این روحیه که انسان در جامعه در فکر شکستن قانون باشه و عملا موفق نشه روحیه خوبی نیست مثل ترس مثل بخل مگه یکی از صفات مذمومه نفسانی انسانه و این انصافن هم به خود انسان زلمه، و هم به جامعه ظلم ولی لذا به نظر ما هر حق باوی که علت تامه گرفتن نه با صحب که مخصدی گرفتن انسان علت تا مست یعنی مادام این عنوان صدق بکنه غیر از اتهان حرام تمرد علال نظام همیشه قبیهه لیکن ما چون تفسیر اون تفسیر قانونی است این قده مستلزم عقوبت نیست نکته یه برد اون تمرد علال مولا چون مولا مالکه اونجا مستحق عقوبت شد باشه شان نداره اون مولا سلرنج تو در مقام عبد اما بحث قانونی بحث عبد مولانی. مولا تمرد بر نظام قبیهه نظام بخواد یک نظام عادی باشه بازم خبیه این صافت شکستن نظام خوب نیست و اگر اون نظام یک نظام اقلائی و صحیح باشه خطعا خوب بیشتره و اگر نظام نظام اخلاقی و اقلائی باشه خطعا بیشتره و اگر نظام الهی باشه که خطعا زلمش بیشتره اما زلم نیست که به خود انسان درمیاد. این ظلم به انسان برگشتن موضوع کیفر و احکام جزایی نیم و لذا به نظر ما در این مقالات و اقوال حق با مرموم شیخ انساری نه قبه فعیلی به عنوان اولی داره که شور و آبه نه قبه فعیلی به عنوان حسانوی داره که حسن به هر تمره قبه داره مخصوصا در شریعت مقدسه طبعا بیشتر بیشه قبه هم به عنوان ظلم معل نفسه نه ظلم علن مولاد و حد کن به حرمت المقضا و این ظلمه على نفس کیفر نداره قطعا قبیهه فوق الادم قبیهه لیکن کیفرش باید ثابت بشه تا نظام قانونی نیاد فی نفسه تلازم با کیفر نداره فی نفسه تلازم نداره اما ممکن جل کیفر بشه اما فی نفسه تلازمی با کیفر نداره استحقاق مزم مزم ملامت و داره اما عقوبت دیگه ثابت نداره من نگوالید من بعد از چند روز نتیجه نهایی